رخداد نادرستی نظریهای نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسانشناسی برنامه خدا برد سلام برد و خدمت شنالدگان گرامی بسیار خوشحال هستیم که در قسمت سی و پنجم برنامه برابری در خدمت شما هستیم تا قسمت سیو و چهارم ما به نقد هایی که به ختمشی اروپایی ها و غربیها ها در مورد شکل گیری تمدن و تکامل بود پرداختیم این قسمت سیو پنجم چون یک قسمت مونده به آخره این سلسله از برنامه البته این سلسله برنامه آخر به پایان نمی رسد بلکه مقدمه ای هست برای برنامه دیگه که یکمند در قسمت 36 در مورد اون کامل خواهم داد این قسمت از برنامه, برنامه برابری رو می‌خوایم به شاهنامه بپردازیم سند محکم ایرانیان و میشه گفت شناسنامه ما ایرانیان و ای که نشان هویت ما هست در خدمت جناب آقای ایران مهر گرامی هستیم می‌خوایم یک پرسش به یک چالش رو مطرح بکنیم این تاریخی که برای ما نوشته شده و نگاشته شده خب یه تاریخی هستش که حدود 100-120 سال اخیر نگاشته شده مرحوم موشی رو دوله پیدیان نگاشته خدا بیامار زدتشون یه چیز حدود نزدیک که 2700 تا 2800 سال برای ایران یک تاریخ مدون نوشتن که یعنی آیا تا قبل از 2800 سال پیش در این فلات ایران هیچ خبری بوده یا نبوده اصلا قبل از 150 سال پیش رفرنس تاریخی ما ایرانی ها چی بوده ما ایرانی ها تاریخ ایران رو از کجا می دونستیم با کدام منبع تاریخ ایران رو مطالعه می کردیم خب تا حدودی باید گفت که نوع نگاه ما ایرانی به تاریخ بحث شاهنامه بوده یعنی شاهنامه بسیاری در حال حاضر در ایران شاهنامه فردوسی رو یک کتاب شعر می یک کتاب افسانه یا استوره و کتابی که توسط حکیم تحکیم قاسم فردوسی به نظم درآورده. جواب آقایان مهرد، آیا ما میتونیم کتاب شاهنامه رو به یک کتاب تاریخی تلقی کنیم؟ مثلا بگید تاریخ. اگر بگید تاریخ به چه دلیلی؟ چون بالاخره یک سری فکت هایی توی کتاب هست. یک سری داستان هایی توی کتاب هست که اساسا با عقل امروز بشری قابل انطباق نیست. یک سری اعدادی هست ولی یک سری انسان که اساسا قابل انطباق نیست. آیا ما میتونیم تو برنامه های تاریخی به این ارجاع بدیم؟ چون تو برنامه‌ای که ازم کرد در ادامه این سری برنامه‌ها هستش و خیلی ارجا خواهیم داد. لذا ما میخوایم از اینجا بگیم که اصلا میشه به این ارجا داد. میشه اصلا اینو به عنوان من بای تاریخی تلقی کرد. آیه دکتر محبی، من باز هم اعلام اعلام میکنم از اینکه در خدمت شنوندگی گرامی و حضرت عالی هستیم. استفاده میکنیم از مثال شما. شاید شنوندگان با خودشون بگم اینا یهویی یه از ناخوشتیها و گوریلا و اینا, و اینا و کجا آفریقا و... آمدن این تدارکی که آی دکتر مایبی در قسمت سی و شیشم خدمت شنوندگان گرامی خواهند گفت تدارکی دیگ... هست که برنامه صدای امید دیده نه بله. و دیگه میخواییم این برنامه رو ادامه بدیم اونو آی دکتر مویبی کامل بله توضیح خواهند بعد میگن که بعد اونجا شنواندگان متوجه میشن ما چرا حالا آمدیم سراغی این برنامه ها رو ما یه مقدمهی قرار دادیم ما اول در قسمت نخستین این برنامه میگوییم که ما میخوایم به بحث نقد آریایی ها نجاد آریایی و اینا به ما اینا هنوز هم میگیم ما این رو احالة میدیم به ادامه میدیم در یک بحث دیگه که آقای دکتر مهربی کاملا اونو باز خواهند کرد. بنابراین شنیدم دکتر نگران نیستم، این بحث ادامه ده ده ده ده پیدا میکند. حالا ما برای که وارد اون مباحث میخوایم بشیم و اون تدارکی که برنامه سردار امید دیده. آی دکتر محبی تشخیص دادن و پیشنهاد دادن پیشنهاد خوبی هم بود که ما اینجا یک مقدمه بگیریم این برنامه ها رو در زمین یک پیش مقدمه هم در این باره بگیم چون ما میخواییم بار وارد استقرار در ش... آسیای غربی بشیم بعد اون وارد تاریخ روایی و تاریخ اسطورهای خواهیم شد به که از استقرار مردم در فلات ایران خب اونجا سنت نیاز داره دیگه. سنت های زیادی ارائه خواهیم داد. حالا اگه دکتر میپرسن که آیا در کنار این سنت ها شاهنامه هم سنت محصوب میشه, میشه یا نه؟ بنده عرض می‌کنم که با دیدگاه موجود نه. دیدگاه رسمی که توی دانشگاه بب. ایران تدریس میشه بب. که او رو به عنوان یک اسطوره و این چیز ادبی کتاب ادبی. آخای زیبا کلام شما فرمودین گفته که ما بعد بخلص ادبیات هم هست. یعنی کلاً اینو کتاب شعر فرض کرده. به قول معروف میگن هر کس اندازه عقل خودش حرف میزنه. خدمتون بگم که بستگی داره چطور به این شاهنامه نگاه؟, نگاه درست نگاه کنیم، درست میبینیم، غلط نگاه کنیم، مشخص باستابش غلط خواهد بود دیگه. من خیلی خیلی کوتاه اینجا میگم چون بعد ما در اون برنامه هایی که عرض کردم خیلی وارد این مباعث خواهیم شد ریزش میکنیم درباره استاد پیرنی هم عرض کنم که ارادت زیادی به ایشون هست ما هم داریم شما فرض کنید دکتر 70 سال پیش حضرت عالی نشستین می‌خواید تاریخ بیمسن. ببینیم، تاریخ ببینید. آخه چه او و اطلاعات اون موقع این شاه کار کرده این خدا بیام. بله. یعنی تاریخ ایران رو آورد از 1400 سال مرسوم، رسون به 2500 سال، هو بده مد کرد. بله، اما هیچ وقت نگفت اون چیزی که من گفتم تا 10000 سال دیگه همین هیچ کسی گرفت نزد. بله، دقیقا اصلاً سخمی هم در نکرده که نگفت شواهدی که دستش بود گفت آقا من تا جایی که می‌بینم اینه. حالا بر ماست که این راه رو ادامه بدیم. آه. نه که همچنان ارجاع بدیم به 90 سال پیش که آه. تا پیش از اینی که از 150 سال پیش نویشتای فرانسوی ترجمه بشه و مردم آشنا بشن با این شکل تاریخ نویسی جدید غربی ها. اون چیزی که روایت می چیز ای بود تاریخ ای بود. مردم کیومرسی می شناختن. کی کیخسروی. بله و تا زمان مثلا خسرو پرویز و داستانهای خسرو و اینا تا یک زمان خ... ز... یزگرد و اینا دیگه چیز دیگه نبود حالا پرسش های زیادی مطرح میشه که کدوم کش درسته اون درسته این درسته از ماده خامنشی شروع میشه آغاز میشه تاریخ ایران یا اونا درست بود کیو کیه چجوریه که که خسرو هم داره مثل کوروش؟ ما که کولوسو نمی‌شناختیم. اینا همه بحثایی ما در برنامه‌ای که تدارک دیده شده توضیح میدیم. بنابراین معلم میگم به تفسیلم. می دیدم... ت... به تفسیلم. ما هم بنابراین میگم سراغ یه بحث دیگه که اصلا می‌بینیم شاهنامه سنده یا نه؟ اینی که اون انطباقا و اینا این تاریخا رو همه رو ما در برنامه مفصلی بحث کرد. خب ما اول باز شاهنامه رو بشناسیم. ببینیم مثلا مثلا فردوسی آدمی بنا فردوسی نشست تو خونه‌اش گفته حالا بذم ما شعری بگیم. شعری کتابی بس دیگه. کتاب دیگه. اینطوری بوده یا نه؟ ما تو این فرصت کمی که هست من فقط به شما بگم که خود فردوسی توضیح داده که چی شده فقط دوستان ما بدونن که شاهنامه هست به نام شاهنامه ابو منصور که فقط متاسفانه مقدمش امروز به دست ما رسیده اصل اون شاهنامه نیست. نیست توی همون مقدمه که به قول دکتر آزاد احسانی ما هزار سال داریم شاهنامه میخونیم اما کمتر مراجعه کردیم یک بار این مقدمه شاهنامه ابو مصور رو بخونیم که ببینیم اونجا, چی... اونجا خیلی چیزای عجیبی نوشته ببینیم خود فردوسی میگه که سخن هرچگویم همه گفتند بر باغ دانش همه رفتند که از این نامور نامه شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان دوران زمانه مدان سپه خراسان در اون عهد اون داستان های به اصطلاح که درباره سلطان محمود هم میگن و اینا اونا باقعا چقدر خنده داره که فردوسی رفته پیشه و گفته شاهنامه رو بگو و فلان و اینا فقط شما بریم تاریخ ها رو نگاه کنید دکتر زمانی که فردوسی شاهنامه رو آغاز کرده سرودنشو دو سال بعدش سلطان محمود از مادر زاده شده زمانی که فردوسی شاهنامه رو به پایان رسونده یک سال بعدش تازه آقای سلطان محمود شده به شاهی رسیده برده شما ببین اصلا این داستان چقدر کجا در آمده به دهن به دهن میچرخه در این حال سپسالال خوراستان ابو منصور محمد پسر عبدالرزاق پور فروخ توصی بوده این خیلی آدم ای ایران دوست خیلی دانشمند و آگاه بوده این دستور میده که تاریخ ایران گردآوری بشه پس از اون کتابسوزی ها و اتفاق که بعد از حمله عرب افتاد حالا ما بعداً توضیح میدیم که این حمله عرب خیلی هم حمله عرب نبوده. دستور میده آقا این تاریخی در دست هستو جمع کنین. خب این فرمان روای خراسان و سیستان بوده. طبیعیه دکتر میگردن و اون خدای نامه‌ای که تو همون مناطق مونده گردآوری میکنن. اینی که شاهنامه بازگو کننده اون چیزه ایران خاوریه و کمتر درباره ایران باختری گفته، یک علتش اینه. بر حال اینا 4 تا موبت پیر پیدا میکنن. ماخ پیر خراسانی از هرات، یزدان یزدانداد پور شاپور از سیستان، ماهوی خورشید پور بهرام از نیشابور و شادان پور برزین از توس. اینا رو پیدا می‌کنن و این خدای نامک ها هنوز به زبان پهلوی دست اینا مونده مونده بوده. پراکنده همو چیزی که از کتاب‌سوزی‌ها تونسته بودن به در بیارن. اینها رو دستور میده ابو منصور و اینها گردآوری میشه توسط معمری وزیر دانشمندش این شاهنامه منصور بوده با سه سنخته یعنی با نسر نوشته میشه تاریخ ایران همون چیزی که بوده رو اینا رو برمیدن از پهلوی به فارسی به نسر مینویسن خود فردوسی میگه یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان آه. از این روشنتر بگه یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان پراکنده در دست هر ه ازو بحرهی نزهه نزده هر بخردی. دیگه از این روشن‌تر بگه بعد دیگه درباره ابو معصور میگه یکی پهلوان بود دهقان نجات دلیر و بزرگ و خردمند و رات پجوهنده روزگار نحوس گذشت سخونها همه بازجوس دیگه حالا توضیح میده دیگه ز هر کشوری موبدی سال خرد بیاورد و این نامه را گرد کرد ببینید داستان رو کاملا فردوسی حالا فردوسی چیکار میکنه بعد اینجا توضیح داده میشه که فردوسی این ابو میاد میشه فردوسی میگه آقا پیشا نامه و مسئولی که ما جمع کردیم و شما لطف کن به ناز در بیار. بیار. بعد خودش داره میگه فردوسی که بنده خودم میگه که پی افکندم از نظم کاخی بلند ده. که از باد و باران نیابت گزند. دیگه نمیرم از این پس که من زنده هم و اینا. دیگه از این روشن‌تر من نمی‌دونم چه آی دکتر یک مسئله‌ای هست که حالا من نمیرم دیگه چقدر وقت من فقط یک نکته خیلی مهم رو بگم. فردوسی میگه میگه یکی نامه دیدم پر از داستان سخنهای آن پرمنش راستان ببینین پرمنش داستان راستان،, راستان داستان افسانه راست... کهند بود و منصور بود حالا بعد ما توضیح میتونیم بدیم که فسان کهند بود و منصور بود آقا افسانه در فرهنگ ایرانی به معنای میتولوژی و میت و میتولوژی انگلیسی نیست. نیست بله چطوری اینو روزه... ما بگیم است, است, است میتولوژی رو اسطوره ترجمه کردن توی حالا اسطوره رام توضیح میدی ما اسطوره میت معنا نه میت معنا میده نه ف... میت اسطوره میده نه افسانه می می که معنی دروغ میده تو انگلیسی بله دقیقا میت دروغ بله افسانه هم بود و منصور بود منظورش که به نصف بود تبایی ز پیوند آن دور بود آیا دکتر میگه ز پیوند آن دور بود یعنی نظرات شخصی درش وارد نشده وارد نشده و بی‌طرفانه بود, بی بود. بله به پیوند او کس کمان پراندیشگیش این دل شادمان نوکته رو ببینه دکتر گذشته برو سالیان دو هزار گریدون که برتر نیاید شمار میگه این چیزی که رسید دست من 2000 سال, سال, سال پیش از من نوشته شد. یعنی مکتوب شده مكتوب. بود آخرین بازنویسیش دو هزار سال پیش از من بوده بله. یعنی سه هزار سال پیش از زمان ما خدای نامه آخرین بار بازنویسی شده بود چیز که دست ببینید تاریخو چقدر دقیق میده ببینید مال کیه به حال من فکر میکنم چون خیلی اینجا زمان نمونده و هر حال صحبت در این زیاده ما می‌خوایم توضیح بدیم که وقت برنامه به اتفاقا رو به پایان هست حالا یکی دو دقیقه تو برنامه آینده حالا میشه در موردش جمبندی کرد بله جنببندی کرد و دیگه بریم قسمت 36 ام رو تمام بکنیم و در مورد برنامه‌ای که طرح جدیدی ببنده. که براش داریم صحبت کنید قسمت سی و پنجم در اینجا به پایان میرسه شنوندگان گرامی را تا آغاز قسمت سی و به خداوند متعال می سپاریم. خدا یارو نگه دارد.